بسم الله الرحمن الرحیم کتاب الصومی کتاب روزه و, و وجوب و وجوب الصيام و اشیاء شرطهای واجب شدن روزه چهار چیز می باشد یک الاسلام شخص اسلام داشته باشد مسلمان باشد دو والبلوغ بالغ باشد به سن بلوغ رسیده باشد سه و عقل داشته باشد دیوانه برش روزه واجب نیست سه والقدرت و علی و توانایی داشتن بر روزه مریض باشد فرزند خب روزه برش واجب نیست اینا بودن های واجب شدن روزه بر شخص اما ها فرائز و صومی ارباعت و اشیا های خود روزه چه هستند اون شرایط فراهم شدند شخص حالا میخواد روزه بگیره شرط های خود روزه چه چی هستند چه فرائزش چهار چیزند میگه یک نیتو نیت کردند و شوافه هم میگن که نیتو از شب بکنه دوال امساکو عن الکلی و شربی و الجباعی و تعمد القیش دست نگه داشتن پرهیز کردن از خوردن و نوشیدن سه و جماع یعنی آمیزش داشتن با همسر که هر دو راه شامل میشه یعنی روزه رو باطل میکنند البته این نامزش داشتن با هر کسی دیگه موقعی که با همسر روزه رو باطل میکنه که دیگه خب بفهمیم ماوره رو چهار و, و تعمد القی امدی استفراغ کردن یکی خودش استفراغ برش قالب شد پیش اومد این باطل نمیشه اما اگر امدی رفت و استفراغ کردین دیگه روزه رو باطل میکنه پس اینا بودن فرزه های روزه فصل المفزدات اسو. فصل بعدی در رابطه با باطل کننده روزه میباشد باشد. الذی به الصائم عشرة و و اشیاء و اون چیزی که افتار میکند با آن روزدار ده چیز هستند یعنی منظور روزه روزدار رو باطل می ده چیز هستند یک ما وصل عمدن الالجوف هر چیزی که عمدی به شکم برسد وررس و به سر پس یک و دو که عمدی به شکم و سر برست والحقنة في تو فی احدی کردن یا امال کردن در یکی از دو راه بله این هم روزه رو میگه میشکنه این حقن کردن چه است داروی که از دو مخرج وارد بدن میشه فرو بردن مایی از مخرج هر دارو که بیمار رو از زیر بدهن بش میگن حقنه پس حقنه در یکی از دو راه یعنی راه جلو راه قبل و القیع و عمدن چهار استفراغ عمدی پنج و و عمدن في الفرج وطع عمدی در فرج بله آمیزش داشتن در شرمگاه شامل دوبار هم میشه و, و عن مباشرة و انزال وطع و اگر انزال هم رخ نده روز باطله اما انزال عن مباشره خروج منی با مباشره پیش میاد مانند. لمس، مانند بوسه بدون پرده، این انزال هم، یعنی این انزال منی هم از باتل کننده های روزه هست. والحیض، حیض خون عادت ماهیانه زن یا همون پریود یا همون و والنفس خونی که بعد از ولادت از زن خارج میشه، بازم باتل کننده روزه هست. اما استحاضه نیست استحاضه روزه رو باطل نمی کنند. پس حیز و نفاس از میان خونهای سگانه زنانه که <تصفيق> توضیحشون رد شد حیز و نفاس باطل کنند ده روزه نه والجنون دیوانه شدن، کسی که دیوانه شد روزش باطل میشه، شه ده والردت و مرتد شدن، کسی مرتد شد خلاص روزش باطل میشه و یستحبه فی الصومه ثلاثتو در روز هم سه چیز مستحب است یک تعجیل الفطر فطر رو در اول وقت خوردن به محض این که غروب خورشید محقق شد اول وقت افطاری رو خوردن مستحب است یعنی خر... غروب خورشید که تحقق پیدا کرد دو و تأخیر و سحور تأخیر سحری جوری نباشه که شخص ساعت دوازه سحی رو بخوره بعدن بخوابه دیگه برای نماز بلمشه نه تا قبل از فجر صادق اینو میگن تأخیر سحری که شما در آخر وقت سحری بخورید بحاله اغصن این روزا که دیگه اوقات به شکل دقیق مشخص شدند که چه وقت وقته غروب خورشید و چه وقت وقته طلوع فجر ثانیه سه و ترک الهجری من الكلامی ترک سخنان فاحش از زبانش رو اصلاح کنند کلام ناپسند زشت تکرار نکند البته این کتاب که نوشته ترک الحجر من الکلام صاحب اقناع که یکی از شروع مختصر ابی شجاست خطیب شربینی ایشون میگه این ترک حجر نیست بلکه ترک حجر من الکلام هست ایشون میگه خب ترک حجر معنیش چه هست؟ یعنی ترک ترک سخن گفتن شخصی که سخن گفتن و ترک کرده این ترک سخن را ترک کند در طول روس آه؟ بعدن استدلال قشنگی البته آورده وای خب دیگه شارهین دیگه میگن نه این حجر هست و حجر نیست ولی اینو بدونیم پس ترک چون بعدن ایشون استدلال های قشنگی هم میاره که چرا مثلا من میگم این حجره چون میگه حجره کلام که همون غیبت و فلان و فلان میشه که ترکش واجبه بعدن یکی دیگه از شارهین که انتهای هست ایشون میگه که خب درست اینه که همون حجر هست باله و این مستحب بودنش از جهت روز بودنه وگر که مسلمه که ترک غیبت و این چیزا واجبه ولی در دوره روزه دیگه این مستحب تر میشه مست... یعنی این کار واجب رو انجام دادن ترک غیبتو رو کردن در روزه با زبان ساده توضیح بدیم چند برابر میشه خود و یحرم و صیام و خمست ایام روزه گرفتن 5 روز در سال حرام است العیدان دو تا اید ایده رمضان و ایده قربان و ایام تشریق الثلاثه و روز ایام تشریق سه روز بعد از اید قربان رو میگن ایام تشریق سه روز بعد از اید قربان رو میگن ایام تشریق این ایام تشریق که سه روز هستن روز گرفتن در اینها حرام است پس دو اید با سه روز ایام تشریق و هم میشن پنج روز و یک رهو سوم یام شک الا ان يوافق عادتا له و مکروح هست روزه گرفتن یا مشک این که طرف نمیدونه این آی رمزانه یا نیست مگر اینکه موافق با عادتش باش مثلا دوشنبه یا مشک هست نمیدونه که آی رمزانه یا شعبان آی سی شعبانه یا اول رمزان ولی این شخص ها دوشنبه پنجشنبه و روزه میگرفته میگه برای این شخص که حالا یا مشک دوشنبه روزه گرفتنش موردی نداره چون این عادت قبلش همین بوده اما روزه گرفتن یا مشک در غیر این صورت مکروه است و من وطعه فی نهار رمضان عامدا فی الفرج فعليه القضاء والكفاره و هر کس نزدیکی کرد آمیزش داشت در روز رمضان عمدی در شرمگاه فعالیه القضاء و هم همتونین شخصی هم باید اون روزش رو قضایی بگیره و هم اینکه کفاره سنگین بده و هیه و اون چیه عبارت از, از کفاره بده یک ات قرقبت المؤمنه اگر برده داشت که این روزا نیست خدا اسلام موفق شد این پدیده رو از بین ببرد خب پس کاری نداریم روی این مسئله میگه ات قرقبت این آزاد کردن برده مومن اگر برده داشت فعلا میجد فصیه هم و شهرینی اگر برده نداشت یا نیافت دو ماه پی در پی روزه بگیره پس اگر نتوانست دو ماه را روزه بگیرد شست تا مسکین رو غذا بدهد لکل مسکین مدون برای هر مسکین یک مد غذا احناف میگن یک سا شوافی میگن یک مد مد چقدره؟ کتاب من در فاوریخش داره گرم بله حالا باز 700 خرد گرمش در میارند در هر صورت یک مد یکمون 700 گرم باشه چه بهتر ومن مات عليه صيام من رمضان اطعم عنه لکل یوم مدون نگه هرکسی فوت کرد و من مات هرکس فوت کرد و علیه صیام من رمضانه و بر او روزه رمضان بود اطعی معنه فیل غذا داده دا میشه بجای او تعام داده دا میشه جای او لکل یوم مد برای هر روزش یک مد شخص رمضان روزه نبوده بعد از رمضان فوت میکنه خب به جای هر روزش یک مده خوراک داده میشه به فقره و مساکین وشیخو اینه عجزه عنی صوم یفتر و یطعمو ان کلیام مدن پیر مرد و پیر زال البته دیگه خب مشخص حکمشون که اگر عاجز از روزه بود میخورد روزه اش را و بجای هر روز یک مد فدیه میدهد، غذا میدهد والحامل والمرضع ان خافتاً علی نفس اون زنی که حامله هست، و اون زنی که بچه شیر میدهد، اگر <تصفيق> بر خودشون ترسیدند. روزه نگرفتند ولی ترسشون به خاطر شخص خودشون بود. روزه گرفتن برای شخص خودشون مشکل داشت. افترات و علیهما القضاء می و قضا می گیرند. و این خافتا علی اولادهما اما اگر ترسشون به خاطر اولاد بود مثلا شیر گیر اولاد نمیومد. خلاصه ترس به خاطر خود نبود، یا اون خوردن موزه به خاطر فرزندانشون بود افترتا و علیهما القضاء الكفاره ان كل يوم يموت در این حالت که ترسشون به خاطر فرزندانشون بود حالا اون زنی که حامله هست حامله بود به خاطر که فرزند در شکمش مشکل دار نشه مثلا ها به خاطر این میگه اگر اومد و خورد به خاطر خودش نبود اینجا میخورند این دوتا گروه یعنی اونی که خامله هست و اونی که شیر میداد غذایی به جا میهاورند و همچنین کفاره میدن به جای هر روز یک مده غذا و هو رتلون و ثلثون بالعراقی و میگه اون هم یک رتل میشه و یک سفمش بالعراقی باله رطلو هم که گرم گرمو خوردی این کتاب من به دست آورده هر رتله پس هر مد یک رطلو فولس والمریض والمسافر سفرا طویلا يفطران و یقضیان مریض شخصی که مریض هست و شخصی که مسافر هست ولی سفرش طولانی است منظور به اون مسافت که در حدیث اومده باشد به اندازه این مسافت باشه. پس مریض و اون مسافری که سفرش طولانی هست روزهشون رو میتونن بخورند و یاققییانی ولی سر جاش باید قضایی بگیرند خب کتاب من به یک کیلومتر درس آورده مسافت سفری رو که میشه روزه رو خورد که قبلا گفتم خیلی از ولما او رو نزدیک. هشتات بعضی هفتات و هفت خلاصه بدا سورتن دیگه فصلن فل اعتکاف فصل آخرین کتاب صوم در رابطه با اعتکاف هست ولي اعتکاف سنت مستحبتون اعتکاف سنت مستحبست وله شرطان دارای دو شرط است اعتکاف اعتكاف سنت مستحب است که دو شرط داره یک نیت داشته باشد و لبثه في المسجد و ماندن در مسجد پس اعتکاف دو شرط داره یک نیت بکنه یکی اینکه در مسجد بماند ولا يخرج من الاعتقاف المنذور الا لحاجه الانسان اگر اعتکافش اعتکاف ناظری بود نظر کرده بود که مثلا میگه برای خدا یک روز یا دو روز یا یک شب خلاص یک زمانی رو نظر کرده بود که به اعتکاف بنشیند میگه در همچنین اعتکافی خارج نمیشه مگر برای کارها و نیازهای انسانی او عذر من حیض او مردن لا يمكن المقام معه یا عذری پیش اومد که با اون عذر نمیتونه به اتکاف بنشینه ماننده عادت ماهیانه اگر زن بود یا مریضی که با اون مریضی نمیتونه در اتکاف بلشینه و یا بطل الواقعی و اتکاف هم با نزدیکی کردن با آمیزش داشتن باطل میشود